ببخشید، شما به چه زبانی صحبت میکنید؟ من لور هستم و به زبان لوری صحبت میکنم زبان لوری؟ من اهل لرستان هستم اسم من مسعود است و اهل خرمابات هستم لورستان؟ بله میدانم که لورستان در قرب ایران است. آیا تا به حال به لورستان رفته اید؟ نه متاسفانه من خیلی از استانهای ایران را هنوز ندیدم لورستان در منطقه کوهستانی قرار دارد این منطقه هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ طبیعی جاذبههای زیادی دارد کشور شما بسیار قدیمی است و می توانیم در هر شهری آثار تاریخی متعددی را ببینیم همینطور است اما خوب است بدانی که آثار باستانی لورستان مربوط به حدود چهل تا پنجاه هزار سال پیش است. یعنی دوره پیش از تاریخ. شگفت آور است. در لرستان قارهای زیادی مربوط به دوره پیش از تاریخ وجود دارد. قدیمیترین وسایل برونزی در استان لرستان کشف شده است. پس حتما در این استان موزه های بسیاری هم وجود دارد. بله، البته.